بخش نودهم با آنکه دیشبش ساعت نمیدانم چند خوابم برده بود ولی به درایل شخصی فرداش رأس هشت از خانه بیرون زدم همیشه وقتی از مدرسه اخراج می جمعه شنبهام شنبهم رو گم میکنم اما این بار قضیهش فرق میکرد خواستم روم یک کاسه سیراب شیردان پدر و مادر دار بخورم اما دیدم کوپول برای همه یک کله رفتم عقبه هستن دستم را رو رو روی زنگشان گذاشتم و حالا نزن که ای بزن عهد کرده بودم که تا زنده ام، دیگر هیچ وقت زنگ دوتایی نزنم بابای حسن مثل این جن زده ها سرش را از لای پنجره بیرون کرد یکی خورد اصلا توقعش را نداشت که کله صبحی من یکی را ملاقات کند یک چشمش از زور خواب بسته بود و داشت به آباتش میزد که با آن یکی هر جوری شده من را ببیند چی عباس؟ توی؟ هنوز مطمئن نبود منم یا نمی پرسید چی عباس؟ بله خوبین؟ چی کار داری این وقت صبح؟ خواستم بگویم برای طرح ریش کنی فلج اطفال آمدم. ولی نگفتم. خوش نداشتم بگویم. حسن هست ابراه مقا؟ خوابه. ساعتتو نگاه کردی اومده زنگ میزنی؟ می انگار خودش زنگ هر جایی رو میزند اول ساعتش رو نگاه میکند. گفتم. نیم دیگه چقدر میخوایم مگه صبح شده؟ نیمه بله بله مگه نیست؟ یا هشته چقدرم بی ادبانه حرف میزد گفتم هشته مگه عید بیت رو جلو عقب نمیکنن خیلی حرف مفتی بود اولندش که هنوز عید نشده بود دوم از آن رو یک ساعت جا به جا میکنن نه یک ساعت و نیم ابراهیم آقا آن روز از دنده چپ بلند شده بود ولی هر جوری بود متقاعدش کردم که بحث کردن با من براش فایده ای ندارد و بهتر از به جای یکی به دو کردن حسن را بفرستد پایین من بعضی وقتها جدا آدم کسر کنندهی حتی اگر حسن نمیخواست که تلافی این مردم آزاری من را در بیاورد، حداقل باید نیم ساعتی اللافش می شدم. جنباندن آن تن لحش آن هم روز جمعهی شوخی که نیست. دوباره به سرم زد با یک دست سیراف شیردان فرد اعلا دلی از ازادر در بیاورم ولی باز دوباره به همان دلیل قبلی منصرف شدم. حسن بیرون آمدنی خیلی خسته و کسر به نظر می رسید اما چون حدث می زد خبرهای خوبی براش داشته باشه هم از همان اولی که در را باز کرد یک خنده بیمزهی روی دهنش بود تا دیدمش فوری گفتم زغ نبود رو آب بخندی نیشش رو هم کشید تمام دیروز دهن اومداش سرویس می شود و می خندی؟ گفت دیروز؟ چی شد نگه؟ چی شده نداره؟ دیروز زیر وانت قاسم بابا اومد جروچشم هشتران هشترم ریخ بیرون زیر وانت قاسم چیکار کار میکردی؟ حال داش غضیه را از اول تا آخر تعریف کنند چیزی نگفتم فقط گفتم اونو ولش جورش کرم هستن کچول دیدی زر اومدی؟ بگو دست خوش جدی؟ آره تو مثل که حاجی تو دست کم گرفتی ول داری بزن قدش زدم قدش چقدر گرفتی حالا؟ پنجاه تومن مک زبان بسته کالی زخ کرد گفت سرراست؟ سرراست. خیلی پرسجو کردم ولی هنوز نمیدانم سرراست دقیقا چه معنی می دهد؟ منظورم این است که چرا وقتی پول کامل است اسمش سرراست است؟ اما وقتی کم و کسر دارد کسی تهراست یا سرکج نمیگوید. خنده حسن به اندازه که حالم را به هم بزند گشاتتر شده بود. اینقدر گشاد شد که دست آخر باز نتوانست جلوی خودش را بگیرد. خب به سلامتی آقا مبارکه. گفتم زنده باشی. ایشالله عروسی خواهر کرد. این حرف را نزدم که به رگ غیرتش بر بخورد. در اسب میخواستم دیگری مسخره‌بازی‌ها را ادامه ندهد. اما کی بود که بفهمد؟ چه به حسن میگفتی، چه به در، چه به خر؟ تازه شروع کرد به حرف زدن. چانش گرم شده بود و پشت پشت هم از آرزوهای بزرگ انسانیت و زندگی چند تا آدم کلفت حرف میزد که اولش هیچ پخی نبودند خیلی واضح می شدید که خواب تازه تازه دارد از سرش می پرد و چون داشت خروس می کار زیادی از دستم بر نمی آمد. آخر یک جا وسط حرفش پریدم بدش کنیم و چه نگو بیا اینم پول پول را توی یک نایلون مشکی دستهدار گذاشته بودم چقدر؟ دویست و کمه که پس بقیهش. بقیهش همان سکه بود که گفتم از مامان گرفتم. گفتم. بقیهش خونه است حالا باز چیکار کار کنیم؟ هیچی باید ترتیب جلسه رو بدم که خریدتو رو انجام بدیم. این چند وقته استاد این شده بود که ترتیب جلسه بدهد. خواستم بهش بگویم که ترتیب حضور لاله را هم در جلسه بدهد که جدا حرف مزخرفی می شود. ممکن بود بیشتر از آنچه لازم است شک شکپرش دارد. ظهرین تورها بود که حسن تلفن کرد و گفت جلسه بعد از ظهر است و اینکه خودش بعد از نهار میآید عقب. گفتم کجا باس رفت؟ گفت خونه مجید. یا پیغمبر، جا قهت آخه سرتون رو می‌زنن، تهتونو رو میرین اونجا. کجا بریم پس؟ هر جا غیر از اونجا. کجا مثلا؟ چه میدونم این همه جا اصلا مگه اون کافی شاب چشم بود؟ بریم همونجا خنگ خدا میخواییم خریدتو انجام بدیم باید بریم یه جایی که کامپیوتر باشه خب بیایم خونه شما کمی فکر کرد ولی نه آنقدر گفت نه نمیشه بالا سریع اینجا نمیاد منم که هنوز بلد نیستم تنهایی خرید انجام بدم بریم بریم خونه لال کامپیوتر که داره بالا سری هم که هست مگه نیست؟ تحملم آرام آرام داشت براش سخت میشد. کفرش را بالا آورده بودم. فقط توان سکوت کند. گفتم: "الو؟ الو؟" هیچی نگفت، ولی از صدای نفسش میفهمیدم. گوشی هنوز دستش بود. دوباره گفتم: "الو؟ الو عسا، باشه بریم. داری گوش میدی؟ فرقی کنه هر جا باشه میام." پس بعد از نهار بیاد دم در ما. "الو؟ کاری نداری؟" آن برای خداش خون خونش را میخورد. لاقل حرفی هم نمیزد که ببینم چه مرگش هست. دیگر دنبالش را نگرفتم. فقط گفتم. بعد نهار میبینم. هر جا که باشه میریم. الو. خدا نفع نفهمیدم چرا بیخودی این همه از حسن ترسیدم. گویین که مهم هم نبود. در زندگی چیزهایی هست که نباید به دنبال فهمیدنش رفت. جردی پریدم هم ما. وقت زیادی نبود. پنج دقیقه خودم را گربه کردم و سر و صورتی صفحه دادم ریشم که هنوز پرز پرزیست و پشت لبم هم کمی سبز شده و اصلاح آنچنانی نمی اما دوست داشتم صاف و کنم